شرکت توسعه منابع انرژی توان، یکی از مهمترین تولیدکنندگان کنندگان باتری و محصولات مرتبط با انرژی در ایران، با بیش از نیم قرن سابقه به عنوان مجموعی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح فعالیت می کند. این شرکت با کارخانه های در تهران، سمنان و رباط کریم، محصولاتی نظیر باتری های سنتی و خودرویی، شمش سرب و قل با خلوص بالا و مواد اولیه معدنی تولید می کند. جایگاه ویژه در پروژههای ملی و نظامی همراه با توان فنی و ظرفیت تولید انبوه آن را به بازیگری کلیدی در زنجیره تامین انرژی و تجهیزات برقی کشور تبدیل کرده است این شرکت در سال 1342 با هدف بازرگانی شدن کارخانه باتری سازی ارتش تأسیس شد و مأموریت اولیه آن تولید باتری برای نیازهای نظامی و صنعتی بود با باتوسه زیرساختها فعالیتش به تولید انواع باتری، شمش فلزی و مواد معدنی گسترش یافت. این مجموعه طی پنج دهه به یکی از ارکان صنعت انرژی ایران تبدیل شده و در پروژههای زیرساختی نقش دارد. شرکت دارای چهار سایت تولیدی اصلی است. کارخانه تهران در جاده شهریار مجهز به خطوط پیشرفته تولید باتری و بازیافت سرب است. کارخانه سمنان در آرادان بر باتری های خاص و فراوری مواد معدنی تمرکز دارد. کارخانه تهران در ری شمش سرب و قل تولید می کند. کارخانه روبات کریم باتری های سید اسید و محصولات سفارشی برای پروژه های ملی و نظامی تولید می کند. ظرفیت تولید شامل دهها، هزارتن تن شمش فلزی و صدها هزار واحد باتری در سال است. پراکندگی کارخانه ها امکان تامین بازار داخلی پروژه های زیرساختی و صادرات را فراهم کرده است. مجموعاً حدود سه هزار نفر در این کارخانه ها شابلند. شرکت به صورت سهامی خاص فعالیت میکند و دفتر مرکزی آن در تهران محله پاسداران قرار دارد. سرمایه ثبتی 5 میلیارد و 930 میلیون ریال است. این مجموعه مالک 20 نبرند ثبت شده در حوزه باتری، فلزات و مواد معدنی است و قراردادهایی برای تامین باتری و تجهیزات ذخیره انرژی نیروگاه ها، مترو، سنایه برق و ها دارد. همچنین دارای مجوزهای تولید، بهره برداری، بازرگانی و صادرات است و در وندور لیست وزارت نفت ثبت شده است. مالکیت شرکت تحت کنترل وزارت دفاع و اطلاعات سهامداران عمومی نیست. حکمرانی آن از بالا به پایین بوده و مدیران به نهادهای بالادستی پاسخگو هستند. استراتژی شرکت بر خودکفایی و یک پارچگی عمودی از استخراج مواد اولیه تا تولید محصول نهایی متمرکز است که پاسخی به تحریمها و نیازهای صنای حساس است. این مجموعه به حوزه های انرژی نظیر تجدیدپذیرها و نیروگاهداری نیز وارد شده است. تسهیلات مالی شرکت قابل توجه است، عمدتا از بانک سپه با نقش محدود بانک تجارت. زمانناه ها قابل توجه و فاقد اعتبارات اسنادی است. مطالبات تسهیلات نیاز به مدیریت دبیغتر دارد. شرکت زیر مجموعه، معدن ایرانیان، تسهیلات و زمانتنامه های محدودی از بانک توسعه صادرات دارد، با نقش ناچیز بانک تجارت و مطالبات قابل توجه. شرکت شتابان انرژی نوین افع و دیگر نهادهای مرتبط بدون اطلاعات بانکی هستند. شرکت توسعه منابع انرژی توان با تولید انبوه، فناوری پیشرفته و نقش استراتژیک در پروژه های ملی ستون صنعت انرژی ایران است. بانک تجارت میتواند با تأمین مالی پروژه ها و ارائه خدمات ارزی همکاری استراتژیک خود را تقویت کند اما باید با احتیاط اخس ووسایق قوی و پایش مالی وارد شود.